این داستان پر پرنده یکی بود یکی نبود زیر گنبد آبی آسمون جادوگری بود که اغلب خودشو به شکل گدا در می آورد و در ظاهر به قصد گدایی به در خونه ها می رفت. ولی در واقع دخترای کوچیکو رو می دزدید و با خودش به جای نامعلومی می هیچکس هم مخفیگاه اونو پیدا نمی کرد. روزی روز ها جادوگر در لباس پیرمردی معلول و فقیر در حالی که کیزه ای را برای جمعوری صدقه به دوشش انداخته بود به در خونه مردی رفت که سه تا دختر زیبا داشت. جادوگر التماس کرد تا چیزی برای خوردن بهش بدن. دختر بزرگتر اومد تا تیکه نانی به گدا بده. ولی به محض اینکه انگشتش به گدا خورد به کیسه اون افتاد. جادوگر با عجله راه افتاد و دختر رو از راه جنگلی تاریک به خونش رسوند. در خونه اون همه امکانات فراهم بود. جادوگر هرچی که دختر میخواست در اختیارش قرار داد و بهش گفت هرچی میبینی ازان توه. هرچی دلت میخواد بردار. دو روز که گذشت جادوگر اومد و گفت کاری برام پیش اومده که باید به مسافرت برم و تو رو تنها بذارم. اینا کلید اتاقهای این خونه است تو میتونی به هر اتاقی که دلت خواست بری به غیر از یکی این کلید کوچکم مال همون اتاق ممنوع است اگر میخوای به عقوبتی مرگبار دوچار نشی از وارد شدن به اون اتاق پرهیز کن بعد تخم مرقی به دختر داد و گفت مراقب این تخم مرقم باش اونو برام نگه دار و همیشه همراه داشته باش اگه گم بشه دوچار مصیبت میشی. دختر تخم مرغ و کلید و از جادوگر گرفت و قول داد به حرفاش عمل کنه. ولی همین که جادوگر رفت کنجکاویش سخت برانگیخته شد و همه اتاقای خونه رو بارسی کرد. از اتاق زیر شیربونی گرفته تا انبارهای زیرزمینی. دست آخر هم در اتاق ممنوعه رو باز کرد و وارد شد. از دیدن حسچه بزرگه به رنگ قرمز وسط اتاق وحشت کرد و از شدت ترس تخم مرغ از دستش افتاد قلتید و داخل حسچه افتاد. بلافاصله فاصله چنگ زد که تخم مرغ رو برداره و سعی کنه پوستش رو تمیز کنه ولی لکه های قرمز از روی تخم مرغ پاک نشد. روز بعد جادوگر برگشت و از دختر خواست که کلید و تخم مرغ رو بهش پس بده. دختر با دلهوره و ترس اونا اونارو برگردوند ولی جادوگر از حرکات دختر متوجه شد که به اتاق ممنوعه رفته جادوگر پرسید آیا برخلاف میل من به اتاق ممنوعه رفتی حالا که اینطور شد زندگیت بر فناست بعد دست انداخت موهاشو کشید و زندانیش کرد جادوگر با خودش گفت حالا میرم سراغ دختر دومی با لباس گدایی به راه افتاد و در همون خونه رفت دختر دومی دو اومد تا تیکه نونی به گدا بده جادوگر اونو هم مثل دختر اولی دزدید و با خودش برد ماجرایی که برای دختر قبلی اتفاق افتاده بود تکرار شد کنجکاوی این دخترم اونو به درد سر انداخت و بعد از اینکه جادوگر برگشت اونو هم به خاطر باز کردن در ممنوعه زندانی کرد جادوگر این بار به سراغ دختر سوم رفت اون دختری محتاط و زرنگ بود و همین که جادوگر دستورات خودش رو داد و رفت در حالی که با دقت مراقب تخم مرغ بود رفت و در اتاق ممنوعه رو باز کرد وای که با چه سحنه ای روبرو شد دوتا خوهرش رو دید که گرسنه اونجا زندانی شده بودند به اونا کمک کرد تا از جاشون بلند شن و غذا بخورند اونا یک دیگر رو در آغوش کشیدند و بوسیدند و از دیدن هم شاد شدند جادوگر که برگشت از اون کلید و تخم مرقشو خواست وقتی دید هیچ لکه ای روی تخم مرغ دیده نمیشه خوشحال شد رو کرد به دختر و گفت تو در مقابل هات مقاومت کردی و شایسته همسری من هستی هرچی که بخوای برات انجام میدم دختر گفت اولین چیزی که از تو میخوام اینه که کیسه ای پر از طلاب دوش بندازی و نزد پدر و مادرم بری. در این فاصله منم سعی میکنم برای عروسیمون تدارک ببینم. بعد به اتاقی رفت که خواهرش اونجا مخفی کرده بود. به اونا گفت زمان رحایتون فرار رسیده. جادوگر خود شما رو به خونه برمیگردونه. به محض اینکه رسیدین کمک کنین تا منم از شر اون راحت بشم. بعد هر دو خوهرش داخل یک کیسه گذاشت و روی اونها رو سکه و طلا ریخت که دیده نشن. بعد جادوگر رو صدا کرد و گفت این همون کیسه پرستلاست. بردارو برو من کنار این پنجره ایستادم و مراقبم که مبادا با کیسه رو زمین بذاری. باید اونو بدون توقف به مقصد برسونه. جادوگر کیسه رو به دوش انداخت و رفت. کیسه خیلی سنگین بود و عرق از سر و روی جادوگر میریخت. بالاخره مجبور شد گونی روی زمین بذاره چند لحظه استراحت کرد در همین موقع صدایی از داخل گونی شنیده شد که می میگفت من از پنجره تو رو می بینم که توقف کردی بهتره به راحت ادامه بدی جادوگر که خیال کرد صدای همسر می میشنوه زود از جاش بلند شد و به راه افتاد کمی که راه رفت باز از سنگینی کیسه خسته شد و دوباره کمی استراحت کرد ولی باز همون صدا رو شنید هر بار که اندکی توقف می کرد باز همون صدا بهش نهیب می زد و مجبور می شد بدون استراحت به راهش ادامه بده تا اینکه سرانجام خسته و کفته با کیسه از طلا به در خونه دختر رسید در این فاصله عروس آینده سروسات جشن عروسی رو فراهم کرد اون دوستان جادوگر رو هم به مراسم دعوت کرد بعد یک شلغم برداشت و قسمتهای از اونو به جای چشم و دهان سوراخ کرد. لباس و تاج گلی تهیه کرد و اونها رو طوری پشت پنجره گذاشت که به نظر میآمد عروس خانم همه جا رو زیر نظر داره. وقتی این کارا تموم شد در بشکه از اصل رفت و بعد خودشو در پر قل و به شکل پرنده بسیار زیبا در اومد. طوری که دیگه هیچکس اونو نمیشناخت. با این قیافه از خونه بیرون رفت چند نفر از مهمونا که تازه از راه رسیده بودند اونو دیدند و پرسیدند از کدوم سرزمین اومده؟ اونم جواب داد من از قصر پادشاه پرها اومدم مهمونا پرسیدند حال عروس خانم چطوره؟ عروس در بلندترین نقطه خونه همه و زیر نظر داره برین و ببینینش کمی بعد با داماد آینده روبرو شد که خسته و مونده داشت برمیگشت. وقتی داماد این پرنده زیبا رو اونجا دید، همون سوالا رو پرسید که میهمانا پرسیده بودند. دخترم همون جوابا رو داد. اون وقت داماد سرشو بلند کرد و کنار پنجره اون شلغم تزین شده رو دید و فکر کرد که عروس آیندهشه. همین که داماد با مهموناش داخل خونه رفت، برادرها و فامیلهای عروس برای نجات عروس از راه رسیدند. اونا بدون درنگ همه درها و پنجره های سالون بستند تا کسی نتونه فرار کنه و وقتی همه راه های فرار بسته شد اونجا رو به آتش کشیدند و جادوگر و همه هم و دوستانش در شاله های آتش سوزاندند تا دیگه نتونن به کسی آسیب برسونند کانال تلگرامی هزار افثان داستان های افثانه ای صوتی نشانی کانال تلگرامی تی نقطه .me می سلاش مهران دوستی تی نقطه ام نشانی وبلاگ ما